گفتیم تمام این فلسفه اکثر قریب اتفاق ضد زنند خیلی از اینها ازدواج نکردند. افلاتون، دکارت، کانت، شوپناور، نیچه، اسپینوزا اینها خدایان این فلسفه غربن. تا موزه ساز کامو، این نیهلی همه اینا ازدواج نکردند از همینجا میشه بایمی تا چدی مرسالار بودن. ما گفتیم مرسالاری واضحترین و و قریبی ترین بیان کفر مرز وسته که خیلی از این از برابری خود رستو یکی از کسانی که از برابری زن ومر ساخن میده خود افلاطون ولی اینا حرف مفت بوده اینا نفاقه اینا شعارهای دروغینه دروغ موق ران شعرا ورا حرفهایی میزنن که کچ نبرده میکنن اینا شاعران بوده افلاتون رو بیشتر شاعر میدارندعنی ش زنده خود افلاتون ازدواج نکرد ولی با هم برابر عجب. خود این که سردمداران فمینیسم و برابری زن و مرد بودن ولی اینها از ازدواج رو خودشون شنخوش نمی تا با یک زن در زیر سخت اندیگی کنن عجب برابری. ببین این دیگه است که در قالب نفاق فلسفی رفته ببینید فلسفه یعنی اساسی ترین بحث فلسفی هستی شناسیست, واقع شناسیست. واقعی شناسیست هنشون ها در واقعیه. واقعیتی واقعیتر و منموستر و واجبتر از خود انسان برای خود انسان نیست و در انسان واقعیتی حیاتیتر از نیاز جنسی نیست برای اینکه راز بقای بشر بر روی زمین دریای آثار فلسفی این فلسفه قرب و پیروانشون در جهان اسلام او عریفا را بیدیگران دریایی از هفتاد من کتابی که خود از ننوشنن اکثر اینا حتی یک مقاله در مورد زن و قریده جنسی نداره آیا اینها واقعا عاشق واقعیت بودن و شناخت واقعیت بودن اینا هستی شناس بودن یا نیستی شناس اینا نیستی شناس بودن ما در یک بحثی ثابت کردیم که کل فلسفه نیستی پرسته نیست انگاره نیست انگاره هستی رو دهشن خودش نمیدونه برای همه ذات فلسفه ایداریزمه حتی اسمن فلسفه مثل مارکس هم تریادیست عملا ایدالیستم چرا؟ برای اگر رئالیست بودن واقعی گره بودن، چرا خوشبختی بشر رو در مدینه های هزاران سال آینده وعده می دادن آباد افلاتون در مدینه فازده جمهوری ناکوجا مارکس در ناکوجا دیگری بهم. کجا این ای ای مسئله به رعالیزم میخوره مارکس که می گفت آقا بشر همینه این دنیا رو با ستریابیم اون دنیا اصلاً من احفادی که چه 65 اومد دارم اون ناکجا آباد مدینه کمونیسم به چه دردی من میخوره خوره؟ چرا واسه من برای کمونیسم مبارزه کنم؟ این هم وقت نیست من واسه دنبال ایاشی خودم باشم. بله. با. خوبه. اپلوتون اینو می دینی بوده. منطقش کافرانه است، عملش هم کافرانه بود برای اینکه نکرد. همطور. پس با وقتی شما سوال میکنید که منطق کفر منطق نایک یک واجه علمی فلسفی است بناباریم با سرخ ساخ سراغ فلسفه کل فلسفه منطقه کفر کل فلسفه منطقه کفره کفری بسیار موزی و حقباز کفری بسیار منافق بناباریم بخوا میگی جنبندی بکنیم ببینید سقرات رو بانی و پیغمبر معرفت نفس و خودسناسی در سمدان غرب و در یونان باستان میدوند ایشون رو اون جامعه دموکرات و اون پارلمان یونان محاکمه کرد و کشت به قتل رسند. ایشون متبود بود که فلسفه این خودسناسی غیر از این فلسفه نیست دروغ است حالا پیروانش از افلاتون که نخبه بود تا اراستوی بعد و اینها تا به اصلاً واره خستشنازی هستا به تلویز فلسفه حتی به عنوانی تالوف هم ور افتاد اینه دنبال ها ایدالیزم ها رفتند آرمان شرها ناکجا آبادها نه نا واقعیت, نا واقعیت نقد بشری قرائز از این حال حق بود که همه این فلسفه رو تخته کرد گوه آقا فلسفه واقعی اینه که بیاد به قرائز حیاتی بشر پاسخ بده فلسفه حیات رو روشن کنه دو هزار سال فلسفه نرقر یک رساله درباره معنای حیات واقعی بشر به جا نگذاشته نخیر خیلی نه الهیاتش همه مربوط به پشت آسمان هفته همه میشم هم مربوط به ناکجابات آبادهای آننده یه بشره بنابراین بایستی گفتش که یکی از نشانه های منطقی ذهن و فکر چه روی فلسفیش چه اجتماعیش ها؟ آرمان‌شهرگرایی است. عینش کفر. بله، از نشانه‌های منطق کفر منطق کفر. قرآن چه میگه؟ میگه هر کس که در این دنیا در عذاب است، در آخرت عذابش عظیم‌تر است. هر کس در این دنیا در رحمت و نعمت الهی است، در عزت است، در اون دنیا بر عزت و رحمتی برتری است. این را است دنیا این آخرته و ادامه آخرت ادامه دنیاست یک جریان واحد نرده از این میشه آخرت رو همین الان جید به این میگه روحادیست به این میگن مکتب حال و اکنونیت ببین تمام قرآن چی؟ همش اش ثبت سر محسوسات مادیات غرایز تمام شریعت معتوب به غرایز و نیازهای باشدیست فقط خریت اندیاه الهی اگر اون رو بخوایم این فلسفه و حکمت بدونیم این فلسفه و حکمتی است رعالیستی و مؤمنانه به همین دلیل خب حالا اگر سؤالی دارید باز میتونیم خیلی منشکرم از پاسوختون رسد سال بعدی من این هست که نشانه های احساسی و عاطفی ایمان چیست شما در جلسه قبل حدیثی از پیامبرو فرادید که به امام کافر است همچنین یک حدیث دیگه هم از ایشون فرمودین که اگر کسی تمام شریعت من رو به مو انجام بده و اگر امام نداشته باشه کافر هستش به میرسه که ایمان, ایمان و های ایمان امری به تنهایی و خود به خود نیست یعنی کسی نمیتونه به خودی و خود و در تنهایی خودش این رو برای خودش قضاوت بکنه و به محک بزنه ایمان معنای است در قلمروی یک رابطه رابطه دو بشر با یکدیگر به میزانی که فردی مؤمنی رو دوست داشته باشه و بسید اون محبت داشته باشه میتونه در احساس و عاطفه خودش این قضاوت رو داشته باشه که ایمان داره و به میزانی که از مؤمنی بیزار هست و به ایمان اون و با ایمان اون در جدل و جنگ هست کافره من از شما خواهش میکنم که این مصال رو بیشتر توضیح بدید خیلی متشکرم خب ببینید این نگاهی به راز خلقت داشته باشیم به ماقومت میگونده فهمیم مصالی بسیاری از حکیمان و عرفا از قدیم به امروز اعتقاد رو داشتن که خداوند برای دوستی و از محبت جهان و بمخ... مخصوصا انسان رو تا برای خودش دوست داشته باشه این تبیر رو برخی اینگونه بیان کردند که خداوند از فرط تنهایی خودش انسان رو آفرید برخی دیگر گفتن چه این تبیری کافرانه است زیرا خداوند مگه نیازمند بود این تبیری به نظر من غلطه اگر خداوند از سر محبت و دوستی خلق کرده باشه این نیاز نیست این خودش عشق. مگر اینکه بگیم که عشق و محبت و دوست داشتن اگر بگیم نیازه خب بله نه دوست داشتن و عشق از بی نیازیست. انسان به میزانی که به قلم روی بی نیازی میلیسته اصلا میتواند دوست داشته باشد. پس این راز خلقت اتفاقا در سناقض ب... با بی نیازی پر بردگان نیست. اتباقا تصدیق بی نیازی وست. انسان به میزانی که بی نیازه می میتواند اصولا دوست داشته باشد. دریوزگی و نیازه ها محبت نمیاره. چاپلوسی و اسارت و ابتلا و نهایتا کینو انتقام میاره. نگاه کنید چرا شدیدترین کینه ها در بین زن و شوهر یا در افراد خانواده است برای این که قلب روی اشد دنیال درست خب بعد این تحبیر اگر خداوند خدا از فرس تنهایی یا برای دوستی انسان را آفرید این تحبیری کافرانه و دال بر نیاز خدا نیست اتفاقا درست دال بر بی نیازی است. پس اگر به این دلیل انسان خلق شده که با خدا دوست بشه؟ با خدا عشق ورزی کنه؟ اینکه خداوند خدابان در قرآن می که من انسان رو خرق نگردم خلا اینکه مرا بفرستد اینجا پرسته شنیه عشق ورزی ببین؟ عشق یعنی پس انسان رو خدابان برای عشق آفرید تمام ورفای محصر خلقت رو عشق دونستد و معنی اول و آخر انسان رو عشق دونستد این درسته این این یعنی این تبیر عارفانه یعنی هم کام بیان عامیت بشره اگر غیر از اینه که انسان هر کاری که میکنه هر تلاشی که می فقط برای اینه که بتونه محبوب تر باشه و دوست تر بشه پس معلومه که انسان برای دوست داشتن و دوست شدن آفایده خب حالا دوستی بین انسان و خدا خدا رو یکی کسی پیدا نکرده باش دوستی کنه رو زمین دوستی بین انسان خدا همون دوستی بین دو تا انسانه دو تا انسانه مؤمنی به خداست دوستی حقیقی محبت قلبی و واقعی فقط بین دو تا مؤمن ممکنه دو تا مومنه این دو تا که خدا رو در قلبشون احساس و درک به تصدیق میکنند درسته؟ خب بین دو تا مؤمن که یکی یکی رو دوست داره یعنی در واقع انسان خدا رو دوست داره و خداست که انسان رو دوست داره این اون دوستی به نه خالده مخلوق چرا؟ برای اینکه انسان مگر نه اینکه خلیفه خداست خرافه ها میگن عاشق و محشوق هر دو خداست حبیب و محبوب هر دو خداست بله و بل دوتا مومن مومن مگر از خدا نیست و دوتا مومن در واقع میشه گفت دو خلیفه خدا هستند. این کسی که دوست داره خداوست اون کسی هم که دوست داشته میشه خداوست خب ولی می‌بینیم که فرق داره بین کسی که دوست داره با کسی که دوست داشته میشه درسته؟ باید. فرق داره ولی فرق, فرق همون فرق بین خالق و مخلوق است و بر دیگر در قلمرو عرفان اسلامی این همون فرق بین مراد و مرید است این همون فرق بین مؤمن و امام امام کیست؟ آن کسی که در ایمان در اخلاص خالصتر است یک ذره برتر است او در مقام امام یا مراد یا پیر قرار داره حتی یک ذره برتر باشه این امامه امام یعنی پیشتاز یعن رهنما این, این،, این مفهومیس قاملا ملموس در تمام درجات روابط اجتماعی هم این واقعیت داره یک کسی که یک ذره بیشتر میدونه خود به خود در رابطه با یکی دیگه او رهبره، او پیشنهاد دهندست، او مشاوره، او راه را نشون میده، او پیش کامه، او پیش خرام بوده این طبیعی. دو, طبی. دو نفر انسانی که بر هر اساسی با هم دیگه رابطه دارن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جنسی، هر هرچی که هست، ما میبینیم که یکی بین دو نفر، ها؟ یکی ما میبینیم، اتوماتیکه ما. بیان. حتی در قلم کفر هم همینطوره، برای همینه در قرآن، است. امامان کفر و نفاق و شرک و زلالت داریم و امامان هدایت و نور و محبت هم داریم طبق ن قرآن ما میفهمیم که هیچکسی به امام نیست واقعیت دا داریم واقعیت بشری همینطوره چه کافرش چه مؤمنش هیچکس به امام نیست یعنی هر کسی از یک نفر حداقل داره پیروی کنه. از یک نفر در لمروخاست خودش داره پیروی میکنه یکی امام اختصادی یکی امام فرهنگی یکی امام هنریش، یکی امام سیاسیش، شه آخر. خب، ولی حالا صحبت بر سر ایمان هست خب، پس ما دیدیم که بین دوستان مومن محبت هست و محبت همون کنمرو به هدایت هست توی صحبت شب قبل این مسئله رو به روایت از ائمه و کلام قرآن هم نشون دادیم که درونجا این کلام وجود داره منتها؟ دو تا کافر هم تو دو قره میفرماد کافران با همدیگه به ظاهر خیلی متادن ولی قلوپشون از همدیگه بیزار است زیرا قلوپشون مرده از شقی از سنگ است نمی توانند همدیگه دوست داشته باشند. رابیتشون حد اکثر چاپلوسی ولی دو تا مؤمن می میتونن همدیگه دوست داشته باشن این فقط در ایمان به خداست که بله برای اینکه منشای محبت خالقه که خلقت رو با محبت خلق یادیده به میزان دیگ اوست و با اوست و با دین اوست می میتواند دوست بدارد قلبش تبایی دوست داشتن رو داره بنابراین یکی از بزرگترین نشانه های و احساسی ایمان محبت و دوست داشتن بیتوقعه تعلقات عاطفی کافران فقط بر اساس نیازه به میزانی که نیازشون در رابطه با دیگران براورده میشه این رابطه است. به میزانی که میانند که نیازش براورده نمیشه به سه شماره بی هیچ عهد و پیمانی اون رابطه رو فسخ میکنن اون قرارداد رو سیرفا میذارن و میرن ولی رابطه مؤمنانه اساسی تره نه که دوتا مؤمن به هم نیازی ندارن ولی میشه نداشت باشن ولی پیوندشون قلبیست یعنی است بین دوتا مؤمن خداست که حاضر است اینها نیازهاشون از طریق هم دیگه براورده می ولی از طریق عزت و شرافت و وفا و براساس عقل و انصاف اینها نیازهاشون برآورده میشه در رابطه با هم دیگه با محبت براورده میشه. هر مؤمنی در رابطه با مؤمن دیگری سعی میکنه از خودش بگذره و هر رو به طرف مقابل بده و نیازهای طرف مقابل رو براورده کنه حالا اینکه رابطه کافرانه برعکسه هر این سعی میکنه یا خودش رو برآورده کنه. این رابطه دو تا مومن بر اساس از خودگذشتگی است، حالا اینکه رابطه دو تا کافر بر اساس خودپرستی است و نفسپرستیست است و خودخوایی‌های نفسانی است. خودخوایی‌های زیاده‌طلبی است و هریسان است. بنابراین این میز نشانه دیگری از کفر و ایمان در قلمرو خاطفه است. این مسئله رو در روابط زن میتونیم ببینیم در روابط دوستانه میتونیم ببینیم در سایر روابط اجتماعی فکری فرهنگی اقتصادی سیاسی هم میتونیم ببینیم یک مومن انسان است که در روابط با دیگران همیشه سعی میکنه از خواستای خودش بکاهه در واقع میشه گفت که از نشانه های مومن در روابط عاطفی از خود است. از خود گذشتگی بدون توقع و انتظار نه اینکه من از خودم میگذرم از بخش از خواستهای خودم میگذرم توقع دارم که طرف جبران کنه اینها رو این معاملات رو خافران با هم دیگه میکنن نه خیر مؤمن اگر از خواستهای خودش میگذاره برای رضای خدا استاری میگذره علاوه در همین دنیا هم از میبینه به میزانی که از خواستهای خودش در با یک معامله دیگری میگذاره میبینه که قلبش و روحش چه توسعه و ساعت و آرامشی پیدا میکنه یعن اجرش خداوند قلبان داره به اون میده به میزانی که او از نیازهای خودش میگذره نیازمندتر نمیشه اتفاقا غنیتر قانیتر و قلب و روحش بینیازتر میشه اتفاقا ولی یک در جای اگر تظاهر به از خود خودگذشتگی میکنه طلبکارتر هریضتر میشه و چهار روز بعد بلافاصطه یقه طرف رو میگه و هر تمنی صد به پاش مینویسه که من فلانجا برای فلان کار کردم فلان کار کردم بچه بس ها انتقام میگیره و بس ها حتی مرتکب جنون و جنایت میشه در نوابط زناشوی در قدم رو به عواطف کافرانه خانوادگی این نوع اصخورگوزشتگی ها حقابتش به جنون و جنایت و انتقام کشیه پس ببین ایسار و اصخورگوزشتگی هم نوعی مومدنه داریم و نوعی کافرانه داریم و با دو حقابتی کام نشانه دیگری هست یعنی در, واقع ببخشید. یعنی در واقع بروز واقعی ایمان در عرصه عاطفه در بین دو بشر نشانش همون از خودگذشتگی و ایساره در واقعیت عاطفی و این که فرد میتونه خودش رو به محک بزنه که واقعا چقدر ایمان داره بله. و یا ایمان نداره و کافر. کافره و بعد فقط شکل بیرونی و فیزیکی از خودگذشتگی و ایثار نیست میزاره که انسان اسخ گذشتی و ازار میکنه اگه اگر می که کی نمیکنه هده نمیشه نمی تدف کار نمیشه نشانه ایمانشه. ولی اگر یک در اسب گذشتی میکنه یه ست چک کسی میذاره و توقع داره که اون بی تا آن چ جش یا از جای جای دیگری خیلی رقم درشت رو بخواد جبران کنه که این توقعگه وجود داره این نشانه بیمانی بی یا کبییمانی یا ایمانی است. یعنی همون چیزی که شما خداوند به دوستی بشر خب کرد. هرگاه که این دوستی بین دو بشر بله. اتفاق بیفته یعنی یک رابطه بدون توقعات نفسانی اونجا ما میتونیم بگیم که این دو بشر خدا رو در بین خودشون حاضر کردن بله. و همون هدف خدا اینجا محقق شد ببینید حالا برمیگردیم به سال اول شما اون حدیث از که اگر کسی امام نداشته باشه یعنی یک دوست مومن و همدل همراض نداشته باشه اگر تمام شریعت ما را انجام بده آخرش هم کافره آها آه میشه مگر تمام اقام شریعت امر به تقوا نیست تقوی یعنی از خواستای نفسی، نفسانی خودتون بکارید تخفیف بدید محدود باید. کنید نابود کنید محدود کنید بکارید جودان ندید زیرا خواستای نفسانی ته ندارند هرچی بیشتر نفس رو نفس دیوانتر و تشناتر و گشناتر و گدارتر میشه خب انسان وقتی که یکی رو دوست داره یک مؤمن دیگری رو در این دوستی قوت و قناه میگیره که بتونه این احکام رو انجام بده بدون که متوقع بشه بدون که کینو کنه و بدون که طلبکار بشه و بدونه که نهایتا نسبت به احکام دین خدا کافر بشه ببین اگر این رابطه این نباشه یعنی انسان این امام نداشته باشه هر کدوم از این اقامی رو که انجام میدهه در ق روی تقوا از خود خدا خوددا طلب کار میشه نهتا سر به خدا ممکن هم متکبر بر میشه میون خ هم جدی رو نخواستیم من اینجا گذشت کردم اونجا جلوی شبونیت خودم رو گرفتم اونجا جلوی حس خودم رو گرفتم و این هجشته شد ببین چون طرف شده به ضای حرفارتانی که خم چیز کاتی داده نشسته بوده که سن میلیون تومان از آسمون بیاد پایین چون نیومد، رضا کمکم کم میزنی دیر دیم چرا برای که قلبش در محبت نسبت به یک امام قرار نداشته که مرتبا توصیه پیدا کنه سهه صدر سهه صدر انبساط صدر قناه صدر یعنی وجود در رابطه با محبت یک مؤمن با مؤمن دیگری سینه دل که معروف است به آسمان وجود، این هایی وسیع و بسیع میشه انسان هایی بازرفیت و با و در ذات خودش غنی و قوی و سیر میشه یعنی به قدم روی بی نیازی میره به میزانی که به قدم روی بی نیازی میره این اقام شریعت که تماما اقام به کاهش خواهش هاست اصلا امکان بزیر میشه که انسان بتونه تقوی پیشه کنه بدون این که کار بشه از خدا و خلق خدا و در واقع میتونیم این حرف رو بزنیم که در وقتی که انسان در رابطه با یک مؤمن دیگه قرار میگیره آینه ای داره تا بتونه خودش رو فریب نده انسانی که این رابطه رو نداره و فقط خدا رو مخاطب قرار میده به عنوان یک خدای خیالی خدا خدای آسمانی این آینه رو در اختیار نداره و به اصطلاح خودش داره همه شریعت رو انجام میده ولی چون این آینه نیست و همچین رابطه با یک انسان دیگه نداره به راحتی میتونه خودشو فریب بده و روز به روز کافرتر داره میشه قلبش داره شقیتر میشه بدونی که خودش بفهمه آفاید. ولی فقط در رابطه با یک انسان دیگه است که این آینه وجود داره با آدم و این محک عاطفی و اینکه من چقدر اون فرض رو دوست دارم و چقدر میتونم در قبال اون از نیازهای خودم از خودخواهی خودم بکنم و به این ترتیب تاری خودش مهکی داشته باشه که آره من ایمانم پس بیشتر شده. بشتره. چرا؟ برای که می‌بینه که هر چی که بیشتر از خودش می‌گذره نیازمندتر نمیشه بلکه بینیازتر میشه در قلب خودش. ها؟ ببینید قانیتر و قانی تر میشه. ببینید در اینجا بهتر میشه دید. همون صحبتی که زحضرت قبل داشتیم که آقا جون، ایمان بدون معرفت نفس امکان نداره. احکام شریعت بدون معرفت نفس انسان رو متناقض و ریاکار می‌کنه، منافق می‌کنه، انسان رو دوگانه و شقطا می‌کنه. درست؟ به معرفت. انسان خودش هرزرلی و هیچ که از خودش به خودی خود نمیتونه خودش بشناسه آه. آه؟ و از مؤمن، از مومن مرآت و مومن برد که آینه مؤمن، آینه مؤمن هست یعنی انسان با تفسیرات فلسفی و شاعرانه و با روانشناسی های فرودی و یونگی و کارن هورنایی نمیتونه خودش بشناسه اینه خودفریبی بیز اینه ای سری فرمول و ذهنیات معرفت نفس بصیرت دیدن یعنی واقعا دو تا مومن آینه اعماق نفس هم و این در رابطه واقعی رو بشر در یک رابطه قلبی و مومنی دوتر انسان است معرفت نفس ممکنه برای همینه که میگیم کسی که امام یا یک مراد نداره خودشناسی نداره اگر تمام فلسفه ها و ارفان ها رز بر باشه علامه دهر روانشناسی روانکابی هایم باشه الازم معرفت نفس صفر. و تمام اونها این سری اطلاعات کازیبیه که در خدمت قرور و خودفریبی و کبر و کفر فرده. از این نمونه ما کم نداریم. طرف تمام فلسفه و حکمت و عرفان فوتهابه در ذهنش. تمام روانشاناسیان پیش ها یک انسان اخدهی حقیر بدبخ و درمانده در زندگی واقعی خودش. بکنم دارم این هم. خیلی مجاند. سال بعدی من درماده تقییه است. و اینا که اکثر امامان سدس اسلام به خصوص امام جعفر صادق تمام مؤمنان آخر زمان رو عمر به تقیه کردند از سمت دیگه سخنی از مولانا داریم که خواهی نشدی رسفا هم جماعت شد این تقییه سو استفاده های زیادی هم از امر تقییه شده بسیاری از افراد امروزه حداقل این توجیه ذهنی رو برای خودشون دارن که فرد باید دلش پاک باشه و بر همین منبال هر فسق و رو انجام میدن و این رو نوعی تقییه میتوند که به نظر میرسه این همون مکتب مرجه در صد اسلام باشه که اومویان رو بنا نخودند و گویی تقیه به این بسطلاح به توجیه رسیده که برای همرنگ شدن با جماعت باید هر گناهی رو انجام داد ولی در دل انسان اگر باور خدا باشه کفایت میکنه و تقیه یعنی و خب این سو استفاده کلان است که امروزه تقریبا میشه گفت آمان اکثر بشریت رو گرفته لطف کنید در مورد این مسئله بیشتر توضیح بدید و این تناقض رو بیشتر بیان بکنید. خیلی مشکرم خود به طرف وز خود لغت ترقیه رو نگاه کنیم. ترقیه از است به لغت تقوه و تقوهی از یکیش است و تقوهی نخشتنداری یعنی نفس اماره رو و هرس و تمه و یاغیگری های نفس رو اجازه جولان ندادن و محدود کردن و حد و حدودی براش قاید شدن این مفهومه ساده و ملموسی از تقوا هست خوب تغیه هم از همین است خوب بله کاملا درسته تمام ائمه صدرستان اسلام با خصوص آخرین سخنگویی که در میان امامان بود که معروف به شیخالائمه است یعنی امام جفر صادق و بعد از تقریبا تمام امامان در چنان محاصره و خفقانی بودند که تقریبا حرف چندانی از آنها به مؤمنان و به تاریخ نرسیده ایشون شدیدا بارها و بارها شیعیان رو امر به تقیه کرده تغییر در دین و ایمان یعنی دین و ایمان خودتون رو مخفی کنید در اونجا تقوا این بود که آقا جون هر و شهرت نفس خودتون رو خیشتنداری کنید بلوز ندید ها اینجا اینکه حتی دین و ایمان را تغییر کنید پنهان کنید یعنی به بازار نوردید خب این حرف خیلی بزرگی ولی این سوءاستفاده ها فقط این موضوع نیست که میشه ما میدونیم که نخستین سوءاستفاده ها این شکلی رو در هم صدر اسلام اومویان از این نوع سخنان پیانبر علی کردند. سخنی که خود علی علیه السلام و سلمان فارسی به اصحاب صفه داشتند در مورد باطنگرایی و معرفت نفس این آقا فقط به زباهی دین نچسبید به باطن دین و به معارف و اسرار دین هم نظر داشته باشید به اسرار احکام شریعت هم نظر داشته باشید و فهم کنید تفکر کنید خب این اومویان اومدن این سو را کردن و گفتن که آقا جا انسان باستی فقط دلش رو نگاه و دل با خدا باشه کافیه در عمل یه از بکنه دیگه خدا میبخشه من به خدا سیده امروز هم همین داده میشه در طول تاریخ سو استفاده ها و انحرافات و سوء برداشت ها هم همیشه بوده مثلا فرده ملامتیه ما در تاریخ بیاد داریم بالی. که شاخه ای از تصوف بوده که میرفتن در کجار بازار خودشون رو مسخره میکردن، سرشون رو تیر میزدن، به خودشون لجن میمالیدن و اعمال خلاف شهر حتی انجام میدادن و اسمش رو تغییر میذاشتن. می ما از این طریق نفس خودمون رو در چشم مردم خار میکنیم. البته این مکتب بدون حقیقت هم نیست. از همین مکتب و مذهب هم سستخدم شده، درش حقی هست، انحرافی هم میتونه باشه. حالا میرسیم به امروزه که عرصه آخر زمان هست و تأکید ائمه ما در مورد تقیه اهمیتش رو بیشتر در مورد عرصه آخر وزمان بوده که با ظهور اسلام در واقع آخر زمان شروع شده بود و امروزه دیگه داره به اوجش و به قا... قایتهاش داره میرسه نشانه آخر زمان رو ما قبلا توی صحبت جداگانه داشتیم که نشانه آخر زمان اکثریت راشکار داره میشه خب ببینید از یک لحاظ ما این رو میدونیم که هرگز نگفت گفته نشد که فسخو فجور کنید ببین گفته شد که آقا دین و ایمانتون رو به بازار نبرید دنید دین فروشی نکنید ایمانتون رو حربه ای برای علیه مردم و برای تغییر کافران و نکنید گفته نشد که باید عرق بخورید لخ بشید که محبه. این ویتن واضح سو استفاده ای وازه این خیانت علنی به دین و معارف دینی است این رو هر انسان عادلی میفهمه هر گفته نشد برید فسخو بکنید کنید خیر گفته شده دین رو به بازار نبرید این اصلا قبل از امر ترغیه ما در قرآن هم داریم در معارف دینی داریم کابلون دین رو هربه و تغییری برای دیگران نکنید این دو تا ضرر داره یک دین فروشی حساب میشه و از دست میدید در قرآن هست کریم مومنان دین رو نفروشید آقا عدتون رو با خدا یعنی ایمانتون رو نفروشید اینقدر حقیق نکنید خودتون رو ها؟ یکی اینکه ایمان از دست میره دو اینکه کافران رو تح... تحریک میکنه و اداوتشون رو برمیانگیزه میانگیزه و مسئولیت و ایمنی زندگی مومنان رو در خطر میندازه این هماغعت مرزه کسی این کار رو بکنه درست این مفاهیم کاملا روشنه و اما جنبه دیگه‌ای این مربوط به آخر آخرالزمان میشه اینه که همونطور که در احادیث صدر اسلام از پیامبر و علی و امامان دارین که در آخرالزمان اکثریت مردم به کفر آشکار میگرایند و به کفر و فسق و فجورشون افتخار میکنند طبیعتا مؤمنان اگر شناخته بشن مورد آزار قرار میگیرند و مؤمنان که مورد آزار و تهدید قرار بگیرند چه با ممکن ممکنه تحت چنان فشارهایی باشه که ممکنه ایمانشون از دست بدن یا تحمل کنند ببین با خود اصل ایمان در خطر میفته پس تقییه برای حفظ اصل ایمان نه برای نابودی ایمان مطلبم واضحه. واضح با جنبه دیگری وجود داره در عرصه آخر زمان که ما قبلا صحبت کردیم عرصه برونفکنی نفسه که قیامت عرصه آشباه شدن نهان نفس انسانه جبرن به واسطه شرایط تاریخی و فیزیکی و متافیزیکی که بر بشر حاکم هست نفس انسان میشه. در اثر هجوم تکنولوژی ها که خود تکنولوژی ها از بیرون نفس انسان را به بیرون میکشند استخراج میکنند خود نفس انسان طبقات اولی نفس انسان تماما امارگی شهوات ارسال هاست درسته خود چنین ای که از طریق تلویزیون ها ها تا اعماق قلوب خانه میره و این نفس رو بیرون میکشه پس توان انسان برای ظاهر دین بسیار بسیار سخت میشه و انسان در این عرصه بخواد ادعاهای کاذب دین و ایمان بکنه خودش رو رسوا کرده و مجبور منافق بشه انم نکته بسیار مهمی این هم جنبه دیگریست این نکات دیگر رو ما ساعتها بد صحبت کنیم ولی خوب در همین چارچوب نکات رو فقط اشاره میکنیم که جای تفکر و تعمل باشه اما نکته دیگری که در این عرصه وجود داره در عرصه آخر زمان ما در اهادیث هم داریم که در آخر زمان رسیب بقول معروف امیرالمؤمنین یا زنگی زنگه آدم‌ها یا کافر مطلق و ظاهر و باطن کافرند یا مؤمنان یخادستان لذا هرچی که ما به قلم رو آخر الزمان تا به قیامت نزدیک و نزدیکتر میشیم تعداد مؤمنان هی کم و کم و کمتر و انگشت شمار میشه بل روی زمین تا جایی که در حدیث داریم که آنگاه که 300 اندی مؤمن روی زمین باشند آنگاه امام زمان ظهور میکنه کجا میشه. یعنی در قدام از پنج میلیار جمعیته یعنی اگر توی پنج میلیار اگر در تمام هفته و و ملت اگر سی اندی باشه تمام زمان زور پس که سی اندی نیست در روی کوری زنگیم این حجم برسیم که بس سی سد و میلیارد مومن روی دلی پنج میلیار نداریم پس دوره آخر زمان نفس به مفهوم کف و امارگی نفس هست رضا دینداری و ایمان و حفظ ایمان هی سخت و سخت و سختتر میشه هی ناممکنتر میشه و همین دلیلی که پیانبال اسلام میفهمه که مؤمنان امت من در آخر زمان مقامشون در نزد خدا از انبیای سابق بیشتری و انبیای سابق بر مؤمنان آخر زمان در نزد خدا قبطه میخورن به مقامشون پس حد اقل ایمان رو در این دوران حفظ کردند خودش مقامش از انبیا سابق برسره برای کاری خیلی یه مثال ساده میزنیم تا همین 100 سال پیش نفسانیت و هوس‌بازی بشر معطوف به بیست تا سی تا کالا بود اشیا بود نفس راستین بود پرستی از دنیا دنیای بشر چه بود الان صدها هزار کالاهای دلربا و افسونگر هر روز داره هی مجذوب‌تر و مذلوب‌کننده تر به بازار میاد پس انسان بایستی چگونه شبان روز تقوا پیشه کنه که اسیر این کالاهای دججالی که روح انسان را رو قبض میکنه نشه پس حفظ دونیمان هی سخت و سخت و ناممکن نامومهتر میشه و لذا کفر هی ایامتر و آشکارتر میشه و مؤمنان مجبورن هی خالص و خالصتر هی پاک و پاکتر و متقی و تر یعنی در تقیه محظ فرو برند پس تیه فقط یک بحث مصلحت برای حفظ جان و ایمان نیست بلکه یک حقیقت هم هست یعنی از عزیزوان مصلحت، فقط نگاه کنیم گمراه کنند است حقیقتی است که رخ داده در عرصه آخر زمان یعنی دین تماما قلبی شده و مجبوره که خالص خالص بشه ما در قرآن داریم که دین خالص فقط برای خداست و اکثریت مردم از دین خالص بیزارند بس در این عرصه که از راه ره ایمان رو پیش می کنه فقط در صورتی میتونه دین خودش حفظ کنه و ایمان خودش حفظ کنه که دین خالص و فقط خدا و رضای خدا رو مدنظر نظر داشته باشه زردی کمتر از این اگه باشه یک پن درصدم به خاطر رضای مردمان و زمانه رو هم نظر قرار بده دینش دست میده چرا برای که مردمان روز روز خوافردار میشن و دشمن دین میشن یک نفر اگه ایمان بیاره خاندانش نظر اول و از کسانش ربات اسوافیون همسایگان دوستان روابط اجتماعیش همه دشمنش میشن او رو در معاشره اقتصادی و سیاسی و عاطفی قرار بدن میدن تا او دست از دینش بردارد توبه کنه و مثل اونها کافر بشه و لخشه. یعنی کسر رضایت دیگران بله ب... یعنی اینکه من دینم رو از دست بدم از دست رو بله. بله. اونها یک تا رو راضی بشن تو و بله اونا یک ذره از دین تکلیف دی راضی نمیشن اینها میگن باسه درست مثل ما کافر کافر بشی و از بیخ کافر بشی. ذره ای ایمان از تو ببینن ها، تو را قبول نمی کنن و تو را ترد و نفرین می کنن و تو رو در محاصره اقتصادی و عاطفی قرار میدن تا توبه کنی و بری کافر شی. برای همین پس مجبوری که ایمان رو در تردی مطلق نگه داری و مجبوری که فقط رضایت خدا رو که فقط خدا رو به میزانی که هنوید ننه و بابا و شوهر و بچه ها و اما و خاله و خودت هم میگی کسی من رو تصدیح دین من رو تو حتما دین نیتون از دست می‌دی. پنجا سال پیش، سال پیش، هزار سال, سال پیش اصلا اینطور نبود حالی. همون انسان میتونست یک کمی شرک داشته باشه و دینی هم داشته باشه این بوزه ذره شک شرک مردم پرستی در سوره ناس در قرآن داریم خناس یعنی همون شیطانی که در قالب انسان در میاد فقط در ناسه ناس هر کسی این مردم هر کسی رابطه اجتماعی نزدیکیشم دیگه من. ما با بشریت که تاریخ نداریم که هر کسی با دو تا پنج تا 50 تا یا صد تا آدم سر کار زری و اون ناس و جامعه اون هستن بزرگترین شرکه یک مومن همیشه ناس بوده مردم پرستی آبروداری دینی مردم هم منو تایید کنن و قبول کنند که من ایمان دارم و مؤمنم و با خدا هستم تا یک چند روز پیش چند سال پیش دو نسل پیش یک ذره کم پیش اگه مردم تو رو در چند گام اولیه تایید میکردند، امروزه از این سرین انسان رو لعن میکنند. پس دین مجبور بره تایید، دل، تایی دل خود خداست. امروزه انسان اگر صد, صد فقط و فقط برای رضای خدا دین رو انتخاب نکنه، نمیتونه دینداری بکنه. پس اما به ترگیه و اهمیتی که امام جفر صادق برای ترگیه در خواهر زبان شد برای همین بوده بوده. دین فقط دین خالص میتونه باشه یه درصد ناخالصی اون نوید درصد دیگر رو هم برباد میده. این رو ما بایستی بدونیم. اگر در مورد سوالی چیزی دارید می تونید بفرمایید سوالی بی نهایت مهمه. شاید ما هم در این مربوط به کفر و ایمان در این دوران همین سؤالی بود که شما در مورد تقییه کردیم